بسم می‌نامم الله علیکم. الله. صلّى الله علیه الله. و علی طیبی اللهم اشفع لنا جميعا مشد، که لله. برحمتك يا رحمن. بحث بود که معیار در خبر بود به حساب زاخر و به حسب ظاهر موافقت در کتاب قرار داده. از شد که قبل از اینکه دووالیات این رو بخونیم دو سه تا نقطه اصلی رو از کهر متعرض بشیم قبل از بوده در قبارت ترقایات یکی این که آیا واقعا این معنا یعنی مبنایی که که شب بشه که به اصطلاح ملاحظه بکنه به اصطلاح مسئله محافظه کتاب رو آیا این واقعا تبصیل هست یا نه عرف شد که برده همینطور طبیه این مبنا در این مطلب تفصیل گذاره و عده از روایات ممکنه به اصطلاح جمع و بشن راجبه به این اسمه مسئله دوم این بود که نسبت یا مسئله دوم این بود که این روایات بعضی یا باب به اصطلاح تعارض برزش در اصل خوچیت ولن اینطوره به انشاءالله متعرض میشیم و بیان این نطور رو میکنیم که برمایه فهم میکن در نتیجه یا نه. و نکته یه بیان نسبت بود بین این روایات و اون روایاتی که الله فرصمی نهدهلی که به یه قبل سه در این که از قدیم عنوان این روایت مختلفه اگر روایت یونسی بن در معیار باشه ظاهرش اینه ظاهرش این طوبه که راوی رواد سیخات بودن و امام سلام الله از داره اده از روایت رواد و خب این میشه که خبر هم در جایی خود که شواهد کتاب باشه خلاف آنچه با اصلاد نتیجه گیری کرده این اگر هموشه هم اما به زرزه بایا داره که راویش بر باشه یا فاجر اگر مطابق با کتاب باشه یا خلافه بز این بزرگ اینجور زفر خیبانه هم عجیبه یعنی فلسون جرماز شخصی که فاجر است مخصوصا اگر احتمال کس باشه و که به مثل شعب خبر باشه واسه این مطلب اما اگر احتمال کس باشه به مجرد این که با کتاب باشه با قبول بکنیم خب ممکنه کرد که از روژه به رو شوارد کتابه این را قبول کردن خیلی مشکل قبول خبر اگر اینکه که بگیم در این سن خرد روایات نظر به مضمون. نتیجه تن این طور باشه این دو بحث داریم یه بحث آجه به صدور در بحث صدور باید سقه باشه و مطابقه با کتاب یه بحث آجه به مضمون که ما اعطیق کردیم بحث مضمون و مدیود حدیثه اون که مطابق بر باشه یا فاضر باشه اون که اگر از کتاب در میاد هجه که غیلا بلا اون هوبه نره باید این دوتا رو با هم دیگه تفصیح بشه. شاید این تفسیر مثلا بهتر باشیم اما راجب مسئله خود که با اصلا یکی از رباریاتی که در اینجا آمده که معافر کتاب و مخالف کتابه همین حدیث عمر ابن هنزله معروفه. از ما سابقا یه رو ها کردیم حدیث عمر ابن هنزله در هر کتاب ما یعنی کتاب کافی و فقیه و تغذیب آمده در هر کتاب و, و در کتاب این حدیث رو از کنم که از مختلفه بعض جایش مثل هم هم بعض نه مختلفه از کردم که و در قسمت میشه این حدیث امرو نهنزله به اصطلاح ما یکیش راجع به بخص اصل ولایت فقیق و که قاضیست و امام قاضی او یعنی رو قاضی قرار داده این بخش اولشه بخش دو اختلاف این دوتاست یعنی میگه شما به یکی از خوابه ها مراجعه کنین رو قاضی قرار که خب این هر دو نفر که اختلاف دارن هر کدام یک فقیهی رو انتخاب میکنه، کنه اونجا چه اما یک راهی رو برای این مطلب که اختلاف بزارت باشه در دو تا قاضی باشن، کدام یکی رو انتخاب باشند این بخش دوم میشه بخش سرمون شاجه به چون برم میگه مثلا این دو تا قاضی ها آدم های خوبی هم فقیه هم امام می فرماید روایاتی که به اون تمثل کردن نگاه بشه میگه خب اون روایاتون تعالیزه اشکال سر تعالیز روایزه از اینجا که مسئله باقل آن ترجیح یا با ما تمیز و با جلد لاحجه با قول رو برزه امام بارد بخص بیان روجت می که کدومی که از این دو خبر روجتی که دیگه شم نیست پس سه بخش داره حدیث یکی اصل ولایت در تعبیر رو در قزا ورد بخش تعارض دو تا بازی اختلافشون سوم با تعارض رواید. مرموم روایت مأخوم شیخ صدوق رواییت رو از بخش دوم آورده مثلا بخش اول رو شیخ صدوق مایورده بخش الی ماشاءالله منشئ اشتباه مأخوم صاحب وسائل شده صاحب وسائل که کارو انجام داده و گفته رواه و صدور مثل هم ناشتار کردم که همون سه بخش نار حدود 7-8 فقت ربایت رو, رو مرمومه صدور صدور فقید نقل نکرد و ظاهرش اینه که مرمومه صدور برزوانده تا و علیه اصلا بحث بلایت فرید رو قبول نداشته حتی در غذا آنمان بابوش هم باب جواز و حاکم اعلان الان رجل تحاکم گرفته یعنی قاضی تحکیم گرفته نه قاضی ملسوب علایه در این کتاب مرحوم آید رو جردی قدس سره در دو قسمت این حدیث رو آورده اگر آن خواستم مراجعه این جردی من هست در این باب روایات علاجیه صفحه 308 این قادشیشی ادرات الاجیه است. حدیث اول رو بله بله عبرده حدیث اول فقط از فقیه نقل کرده بر رواهات فقیه اینجوری داود ابن حسین اما عمران حضران نبی عبدالله خال قرصفی رجلی اختار کل من همان کل واحد رجلا. همان رجلن هم. از اینجا شروع از اول عندما من به نام بينام مناظره في دين الاميراض فلا يا حفص ستر ایشون حذر ده من 600 600 مرحوم شیخ صدوق حذر کرده حالا ترجمه است که آی وجود یک یکجا جمعش میکردن اما این ادبی وز بالوغوز این طرف کردن که این قسمت رو اینجا آوردند در صفحه 308 متن تغیب رو و مقایسه با متن کافی و تهذیب را نکردن درخندی. ولیش نوشته که در این, این فکر میکنم نم باز اشتباه چاپ شده. نوشته که در زیل رو از توام مال بنده شما خواهد آمد این دستیویه که در این کتاب ما اشتباه چاپ شده شما میکنند کتاب دوخت چاپ کرده. این کتاب دستیویه نیست سادوسیه. این صفحه این شماره سادوسیه باب ده باب هفت. دستیویه که اونات شماره سادوسیه در این کتاب 379 و و تقریبا 70 صفحه موقع این دو تا حدیث ایشون فاصله انداخته وقت در اینجا که اختلاف نسخ خیلی مفصل در اختلاف نسخ بین کافی و بین تهذیب آورده دیگه اختلاف نسخه هر دو با کتاب فقهی رو خودتون باید نگاه بکنید چون متاسفانه متن فقیر رو یک جا آورده اون دوتا متن رو با اختلافشون جای دیگه آورده علیکه به ما که در صفحه 379 متن کافی و تحضیل رو در این چاپی که دست هست آمده اون وقت در اینجا بعد از این که امام اول میفرماید مراجعه کنیم به مشهر و بین اصحابه کم مرتبه اسمشی گفتی بعد می به این که امکان خبران انکن مشهوره اینقدر رواه حکم و مصره بات انکن قال یون و سماوا فقیه حکم حکم کتاب و سنه و خالف و آمنه اخت اخت اخت اخت کتاب به تنهایی نیامده محافظت کتاب به بله مخالفت با مخالفت عامه این هم یه مشکلی در این متن صدوق اینطوره. ما وافقه حکم و گفت کتاب این حکم اون هست من اول بعد از کردن به مضمون بیشتر می میخوره که ما وافقه حکم مضمون خبر مخدود خبر اگر مطابق با کتاب و سنت مشکلش اینه که بحالت عامه داره این بعد قلت و بعد میگه قلی تو یعی تو فدا وجدنا اهد الخبره موافقا لده آمه و آخر مخالفا ها درک کردیم نمیگه یه اهد الخبره موافقا منجد مخالفا منجد یا کل الخبره موافقا با کتاب این متن صدوق روی مسئله موافقت کتاب نیمزن بوشن شد روی موافقت کتاب یک مقداری ابهام داره موافقت کتاب به تنهایی نامده من این نکازش رو ارزبه کنم اما در کتاب چون آقایان خیال کردن این دو سپا مطمئن یکی هسته هسته ولی خب. تو ما یک شعرها رو مفصل در بحث تعارض دادیم اینجا شا... این من وارد این بحث نمیشیم در متن کافی و فقید و تحضیح این طور قلوتو یوندر قال یوندر فی موافقه موافقه و فی موافقه موافق و, موافق حکم و حکم کتاب و شبیه عباد صندوق و خالق الامن فریو خالقه و یسرک ما خالقه حکمه و حکم کتاب سنه و واقع الامن این عبارت پرس شروع در صدور نبو اونی که مطاب ما خالقه حکمه و حکم کتاب سنه و واقع الامن دو قیل هم مخالف و هم موافقه الامن به قلت و جهلت و فدای. اینجا تقی بین عبارت باز تهذیب با کافی فرق میکنه اینم یه مشکلیه صدوق که اصلا این عبارت انداخته اینکه هیچ اینا میگه که ازجای به کاره گاهی اوقات بعضی از بزرگان منجونی را حاجی هم در این استن که ما موارد را که صدوق یک مقدار از ذات حزم میکنه فکر نمیکنم شنیشان ایشان عجل احتمال که اون صحیح ایشان نبوده الان یاده اگر شنگیم گابای صدقو یک سطح وارد یا نیوم صدق کم تر بیستر هست بگیش هم اینجا هست جو ایمتو در کتاب کافی اینجور آمده امکامل فریحان عرفا خکمه منر کتاب و سنه عرفا خکمه منر کتاب و سنه این حبارت کلن در صدقو و وجدنا احد الخبر المعارض للعام و از آخر مخالف له که خب این خود این مگر نشون میده که مراد از موافقت کتاب یک جوری باز باشی که در خبر متعارض هم تصوور بشه معناش همین دیگه خب امکان تغییر ها البته از کلام اصحابنا مرحوم شیخ صدوق چون صدر عبارته برده این یه تیکی هم که مربوطه به فریحه اینم نهاردهش مربوطه امکانه فریحان منمون شیخ در تنظیم این عبادت جور دیگری اونده هم بسید شیخ صد اختلافش با معلومه کلومی که مصدرش با کلومی فرق کنه ولی اون نتیجه تن صند یکی ها اشتباه نشه ولی که مصدرش فرق این حالا من نمیخوام بارد اونجا ها کنم کنم طولانه اونجا هم الان نمیخوام و صلوب هم مصدرش و صلوب هم شد من اینجور داره ارعیت انن مفتیه به جای مفتیه خفیه یا اطیه علیه ما معرفت و حکمه این دقیقا خلاف احوالت مرمو کنه این چی بوده یعنی سه تا مستر ما داریم یک مستر اون هست کرده برمون صدود یک مستر اینطور طور رو که این دو تا فقی هر دو با این که مخالفه از کتاب و سنت گرفتن حالا این چی جور مثلا که هر دو از کتاب شیلی تو سی جور دیگه نماری کرده به جای عرفا او تیره ما این دو تا نشناختن از کتاب یعنی این دو فقیه نتوانستن از کتاب رسوندن در بیان نه نمو... روشن شد دقیقا عکس اون معنایی که مرموم کلیمی آورده البته در کتاب احتجاج تبرسیل این ربایت رو عورده خود مرسلم عورده اما با متن کلینی عورده بعد ایشان خود مرمون تروسی در ضد قلتوی داره عبولوی داره میگه مرا از این که عرفا حکم مرمونه از کتاب و یعنی به اطلاقات کتاب مثلا در کتاب یه اطلاقاتی هست که محتضیه اینه که این حکم ازش در بیار پس ببین با مثال مثلا زاهر از کنوهانه دربار به اده مسکن حتی مسکن و نفته بریزن در غیامه اده با شوهر بده شوهر سابقه باید شده. خب بگیم این ظاهرشینه. از اون از سنت پیمنبر نفضیه که در اده باه نیست پس بگیم اینا این دوتار بایه یک نواز که هست این مطابق با کتابه یک اده میاد که نیست این مطابق با سنتی اینجوری بگیم نه اینکه این خب اینجوری جمع میکنه حالا یه روشن شد که در حدیث عمر النظره یه مشکلی داره یک سطر این حدیث در سه مصدر ماسیب رو آمده در یک مصدر کلن حذف شده که ابت که کنن بعضی به صدوم نستانه شعن که کنه. احتمالا مصدر یک شده همینطور بوده و در مصدر مرموم ک این طور که هر دو استناد به کتاب سنت میکنن با اختلاف به و در کتاب شیخ توسی اینطور که هر دو از کتاب سنن نشناختن خفیه علیه ما این مطلبی که در روایت هست در کتاب هست در سنت درکن چیزون دقیقا بکن البته انصابا این مطلب شیخ توسی شد به اعتبار باشه برقا فعلا این قسمت حدیث این مشکل رو داره این پس به موافقت کتاب و مخالفت کتاب یکی از اهم عدلهی که ما داریم یکی شروع توماید به هزه که این ابهام داره بعدا خود کتاب رو به تنهایی ذکر زمینه کرده موافقت و مخالفت آمن اون وقت و این در کتاب اوالند عالیه ما در بحث توارث کلمات اوالاده نمیخونیم چون خیلی ضعیفه در و العاده این اوالاده در قهر دهم به نسبت به علام در کتاب علاقه نیست از امام باقر انظار و از و ذهن صادر از اون خیلی این شخص کتاب و این شخص نزد ایش از همیشه است او ایشون بعد از قلت در این که بگویند تو این اینجا داریم جا عدلان مرزیان موسقان فقال علیه السلام آن دور به من ما, ما مذهب این اصلا بحث کتاب رو کلر عزیز کرده کتاب <تصحنت> نزد <تصحنت> در این متن روات زورا را به تأییدشون که ما وجود محتوای زورا که البته این کتاب به هیچ نحوی عزشی نداره و جای قبول نیست از رو... روایاتی که ما داریم در باز باب تا آرز کلیمی در اول کافی دیباجه کافی ایشون اشاره ای داره ایشون راجع به بحث تا و این کلواز رو بکنیم که بخصی لکیفی هم هست خیلی هم منوش دقت نظر ایشان که شهادت حضرت نمو الله انما لیساعن در تمیز شیء مما خلل در روای سفیه از علمای علیهم السلام برعیه که چیزی متنه با ری و تصورات خودش به اثر احتیاض خودش تفسیر به اصطلاح تعارض و برداره الا الا ما اطلق به عالم اصلا یعنی به کار برده مراد امام به قول یعنی اعرضوهما اعرضوها روایتوا الا کتاب الله فما واقفه اینجا واقفه نشده اینجا چاپش روشه کتاب الله جل و از اقبرو با ما خالده کتاب الله عز وجل دو. این رو مرموم کلیمی به نحوه مرسل آورده در اول گیباجی کافی که این همه هم همه روشن شد که یعنی واضحه که قبول این مطلب به شمه نقلب مضمون اصولت که مثلا متن عبارتی باشه نم. از کسانی که باز هم در اینجا در بحث تعارض و موافره کتاب از اونا نعر شده و روایت است که روایت نیست عبارتی است که مرحوم شیخ مفید داره در کتاب همین رساله عددیه که دیروزم اشاره کردم در اونجا در حدیث و, و معروف قول عبدالله در همون رساله عددیه رساله عدده ازید است از کردم اسمش رسالت جوابات اهل موسل از است اشتباه مرومه آهای حاجی نوری اسمش گذاشته یعنی اختصارا نه اشتباهن اختصاراً اسمش رسالت و عدد مرموم در موجه زیاد مرموم کنن رسالت عددیه نه این درسته نه علایها حال بر حدیث معروف قول علی عبد الله علیه السلام اظهار تا کن حدیث ها مختلفان فخذوا بما وافق منهم القران فاهلا تجديده ما شاهدا در قران فخذوا بالمجمل علی هر چه تعبیری نداریم ظاهرا ایشون خدا زره داشتند جمع مضمونی کرده ونی که در کتاب رواه عمر بن اول مجمع علیه بعدا قرآن تا تدون یعنی قرانیش هم با موافقت عامه است ایشون نوشته که فئن لم تجدوا له مشارده در قران فخودو لاره بفی، فی اختلاف و تساوت الاحادیث و فی ما من قول العامه هرچی به انصاف ببینید برنوا ما اون شیوخ خیلی روالت نقل محصول شدیدی کرده احتمالا همین میگه آتا مارد نهنزله رو شکره این نموش محلی لاره ما تو رازه مارد نهنزله دادن جدیگه نداریم علایه که ما خواهن. این حدیث هم با این وضعی که ایشون نقل پرمیندن این هم قابلیت بله قابل قبول نیست بله حالا روایت دیگری که که توی روایت دیگه نیامده من فعلا قرار اون روایت دیگه شدرها نمیشم چون اون روایت ربطی به ما نفیه نداره تو عده از روایات اصلا موافقت با کتاب ذکر نشده با قطع نظر از این بله فعلا از کردیم روایتی رو میخونیم که در بحث تاروز این بحث اصولاً که در روایت میاد فرمودن بحث تعارض ایده از روایات در بحث تعارض فعلا اون قسمت تعارضش الان می خونم بعد برمیگردم به اون قسمت دومش فعلا بلد. از جمله از این روایاتی که ما داریم در این جهت روایت است که مرحوم کلینی 4 16 اینجا داره البته این دوست سرش اختلافه اما امام در مقام جواب راجع به اصل اینها را باید بعد متعرض بشه بله در باب حدیثه این مختلفه این در کتاب تفسیر عیاشی شماره هیچده در اونجا در تفسیر عیاشی ابن الحسن رجع که فعلا مرسل ان العبد صالح که موسی بن رجع قدس قال ادراجا اکثر حدیثان مختلفان از کلی متعارضان و نادرنده بود فقصهما علی کتاب الله و احادیثنا ببین مطابق با کلمات ما هست به ان اشبه ها فوا حق و الا لم يشبه ها فوا باطل این هم فقط کتاب لسنا نیست یعنی با ببین با ما با اهل بیت مطابق هست یا نه اگه مطابق قبول کن و قبول نکن فعلا این بله قابل قبول نیست اون وقت این روایت رو به شماره 20 احتجاج طبرسی داره رومی علی الحسن جمع علی رضا علیه السلام ان قال قلب سر روز السلام است. تجیو آن مختلفه. زار همون باشه. قال ما که عنا فقیس و علا کتاب الله و اهادیس نام. ف انکار یوشویها تا من فليس مننا. داره و نام. بعد در قلو تو تجیو آن اروجلان و کلام ما به فلا نعلم ايهم الحق ايوه الحق فقال عليه الحق این حدیث شاید مثلا اشاره باشه به مبنای مرو اصول کی میگه اون حدیثو مراجعه به قرآن میکنه اگه سرس رابیش میگه سرس میگه تو مخیل. یعنی معلوم میشه این بحثه مطابقت ها کتاب در خبر سره نیست این شبیه مبدا استاد میشه علایوهاله خیلی جمع روایتن قبول روایت خیلی مشکله اگر ظاهرش باشه ظاهر میشه که حدیث مطلقا چه ثقه باشه چه سره با کتاب بررسی میشه ظاهرش اینطوره یعنی غیر ثقه باشه اونم غیر لونجاهر اما اگر ثقه باشه دیگه با کتاب بررسی میشه تخیره و هر حال این حدیث شدن در احتجای تبرسی هر جایی دیگه ما این رو نداریم و قبول این روارت خیلی مشکل اما فیلان دارد ما از حضر رضا یه روارت خیلی محسلی در باب تا داریم که در کتاب اونه اخبار رضا آمده منفردن جایی دیگه نه امام میشتر روی تحلیل مضمونی میکنن حالا ممکنه در حضر جهب یک صورتی باشه علایه هاده این یک مقداری احتمال بودیم در حد احتمال از میکنم احتمال بودیم این حدیث این حدیث هرزن رو یک صورتی از اون باشه یه حدیث بسیار مفصلی که مرموم شیخ صدوق منی کردن در اویون اورده و همون حدیثی که چند بار عرض کردم بعد از اینکه حدیث اورده میگه مقموم اصطاق اون صدر نبدالله سیر رعی بود در را این حدیث و که من از کتاب رحمه درش خوندم صدر نبدالله چیزی نگفیشون فلمیون که با حاله فرواه و نیم و, و, و نیم. چون اجازه داد من قبول کردم اینجا آوردن در این زیل حدیث اینکه از کردم بعد از این که میگه باید نگاه بکنیم آیا امرش الزامی است، امرش کلی است، بعد ایشون اینطوری که اضافه دلیل که آن نافیه خبران به اتفاق به اتفاق گرری من یاوی فنه نه وایون ک روگو خوب دق و کار خبران صیحین معروفین از کردم از بعض از عبارات امه در که در قید صحیح همونطور که اهل سنت گفتن که خالی از شروع یه شهر همون فصلی عرض کردیم. ببینید کار خبران صحیحین معروفین این معروفه سحیه نداره خرس که بعد اینکه رابی سرده باشه معروفه یعنی شودوز نداشته باشه این اگر این نکته درست باشه می‌دونیم این مسئله که خبر صحیح اون از که رابیس سرده باشه و شودوز نباشه این قبل از آمّه است آمّه از میاد از میگن مسلم از اواخر مسلم در آورن ما هم از اواخر حضرت صادق داریم هم اواخر حضرت رضا معروفه به اتفاق ناغله یعنی کسانی که نعرض کرده اتفاق مرازه. فی هما يجب هما و به اینجا شهر مراده فیهما یجب العقل به اهدهما او جمعه او با ایهما و احبت موسع ذلك دالک لک منباب تصمیم این شبیه مراده حسر جمع لرسول الله صلی اللہ علیه و علیه و و و کاند ها رو که دالکه من بابل اناب ول انکار و ترک تسلیم در رسول الله صلّ الله عليه و آله مشکن به الله العظيم بعد رفتم آورد علی... علیکم من خبر این مختلفی فرض مال کتاب الله خیلی عجیب نیم می‌دونم ولی این چیجی جنب کن بین سادروزه فرض او ما کتاب الله فما كان في کتاب الله موجود در حلال او حرام فطبق او موافق کتاب و ما لم يكن في كتاب ففرض او على سنن النبي صلى فما كان في در نهی حرام و مأمورن به رسول الله امر الزام فطبق او موافق نهی رسول الله و امر بعد الی اخره بله بعد, بعد ایشون میگه که این طور ماکانت سنده نهی اعافته اعافه نکراهت ولش بله و کره همو. بله خبر او فيما افعل رسول الله صلی الله علیه و و کره عدم و فذلك الذي يسأل اخذ به جميعا او بهما اونجا عبارت رفتون سند اینجا می رو مزمون <تصیح> اونجا رفتون سند اینجا حساب رو برد رو مزمون هلا یه ای این روایت هم از این این دو تا روایت این که از امام رضا سمان برد نرشده اجمالش رو میشه قبول کرد اما تفاصیلش به ذره اون را می خیلی درسته درست نداره که وضعی داشته باشه که آدم به اصطلاح بتونه به او الان تمسکه تمام بکن هست کنم که از روایتی که ما داریم تقریبا میشه گفت بهترین روایتی که در باب تارزه اینه است که مرحوم سال وسائل نهر کرده در وسائل عنوانش اینجوریه دید این, این آقای از وسائل نهر کرده مصدر ارسیش موجوده سعید ابن حبت الله راوندی محروب به خطف راوندی همه که در صحنه متحر همین قدرش قصد برآمده آمده است همین قدرش در سحن مرحوم خطف راوندی فی رسالت حلتی علفا فی احوال احادیس اصحابنا به, اصحابنا به اصحاب سه حتا من چون اون رساله رو ندیدم بعضی ها بردسه این متقطعاتی که موجوده چاپ کردن به جای نمیده در حدی نیست که رساله باشه شون مرموم قترابندی، الان ما فکر کتابه، احکام قرآنش، فکر قرآنش ایشون جزو ممکنی نموجه خبره مثل سید مرتضاست اولا مبنای ایشونو رو بدونیم مرموم قترابندی مثل ابن ادریسه مثل سید مرتضاست ایشون جزو کسانیست که خبر باید رو جد نمیدونه حالا اگر همچه رساله ای نوشته اگر همچه رساله ای باشه احتمالا مرادش این بوده که مثل اخباریه که بعد آمدن که روایات اصحاب ما مثلا قطعی نیست این چیزی اینکی روی ایشون اصلا چون قائل به صحت زعف خبر نیست ایشون مبناش خود جبه خبر نیست اینه که این رساله چیه ما الان نمیدونیم. مرمومه مجلسی در جلد دوم بهار همین چاپ متعارفه به صفحه دیویست و رزم سی و پنجه ایشون داره ار الان مارباه و بعض استقار نقلقه و بعض استقار الان یه حاله مرحوم صاحب وساقه و مرحوم مجلسی چون یه دی بحث کنن که این رساله فوقها یا رساله تلتی علفها الان عبارت مرحومه هیستی این فوقها خوندش این علفها بوده فوقها خوند فی رساله تلتی علفها فی احوال احادیث از خوابنا و اثبات سهرته ها این رساله در آثار قطب را و نشده کسانی که متصدی احوالیشون یا بعض که خودشون اجازه ده این رساله ارز کردیم بعضی خیال که مرحوم صاحب سا وسائل یا به ها اولی رزینه اول نه صاحب سا وسائل نه به ها اولین کسی که اینه نفتر مرحوم ملا محمد امین استرابادیه در رساله. کتاب الفا و المدنی چند تا حدیث از اون کتاب نرمون کنه که این رساله پیش ایشان موجود بود این بعض استقاطی یعنی هم که مرمومه مجلسی میگه الان نقل بعض استقاط مراد همون مولا محمد امین است که محسسه به مکتب اخباری است. ایشون در آنجا عورده سند هم نداره واضحه به نحوی وجاده توی مجموعه آثاریشون هم زید نشده این رساله اسم رساله هم نمیدونی. ر سالی به تابر سرد بهار سال فکر سعی کنم کند روز پشتش فقاهت مارم. آن عیان فعلا چون میذخاجه هافس مأزور دار ما را نمیذم ولی این رسالت اللفاها یا رسالت فقاهه آن عیان حالا در مرhum موللا مهمد این استرابادی مقدار زیادی از 25 تا 20 شهادی از این رسالت نهروم کنه. مرهم قط راهنی در آذر ششم و هفتمه. ایشان در اونجا اوقازه وقت از مرقومه قد با سرد در کرده از روایات خوده از که چون رساله اختیارمانی اصلا از جوهر اصلی رساله ختم چون مروم پطوراوندگی قابل برجسته نیست حالا مگر می‌خواید بگید اینا مثلا فکریات مثلا یه اینجوری ایشون از محمد و علی ابن علی ابن عبدالسلام دو تا از مشایخ ایشان هستند مرموم قطور رو بندید. این مشایخ رو دیگر غالبا به دنبال اون به ساقت مصطلح نباشیم البته آن اگر بخوام مرموم آقای ها شفا بزرگ کنیه طبقات اعلامی شیه هر طبقه یه بررسی ای جزادانه این در اسطلا اسمی سادس قرون از سقاتل قدون فی سادس قرون در قرن ششم شرح اسمین در برده آن در دو کتاب ایشان ششم و پنجم نگاه بکنن این سندی که هست در اونجا موجوده معلومات ما هم کلا خیلی زیاد نیستن اونجا مشایخ هست در اون طمره ابن علی بن عبد درسته البته این علی بن عبد نظر مثلا باشه دو تا پسر داره که اسمش علی علی بن علی که چه اسمش محمد اشتباه ان ابیه ما ان عبدالبرکات علی بن حسینل ال جوری جوری همین زاهر اطراف استان فالس و شیراز رو می گفتن مثل اون حسن جوری ایشون ابلبرکات علی ابن حسین جوریست مرموم آشها بزرگم شرحال ایشون او برده ترجیم میاده از ایشون که از علما هنجا از شاگرده مرموم صدوقه و راویه آثار صدوقه ابلبرکات علی ابن حسین جوری این عبی جعبال ابن واقعه این صدوقه دیگه صدوق مرم انشا انا ابيه که معلومه ببینید پس مرحوم قطب راوندی در این رساله به سندی که الان آوردیم از صدوق نقل کرده مشکل کار اینجا اینه که این روایت در کتاب صدوق هم نیست فعلا در هیچ یک از آثار صدوق این روایت وارد نشد این سه ساعت ایستاده به واسه خطر نشه آقای سرلخشون من خبر بده حالا یه حاله بعد دیگه سند سنده صدوبه سند ان عدی ان سعده الله که خب میشنستیم ان عیوب ابن نو ان محمد نبدی عمر حالا البته ما یک احتمال میدیم شاید ایشان یک نسخه از کتاب نوالر نبدی عمر داشته کده این مرحوم قطورا بردی این طریق به کتاب نبی عمر باشه احتمالی که من میدم این باشه این سند رو ذهر کرده به عنوان تریخ تا کتاب ابن عبیدشو در آثار صدوم نیست و خیلی هم بریده قبولش هم عبدالرحمن ابن عبی عبدالله الاله هایم به لحاظ قائده این سند معتبره الاشکال کل رو اشکال فی جهالت المسته که اصلا این رساله فوقها یا رسالت لفی علتها چیه واقعا مال محبوم قطف رابن مرحوم الله محمد امین ازفرابادی اشتباه کرد. چون میگم در مسادر دیگه نصفت دادنش در رساله اس است. این رساله رو هم نمیتونیم. و این حدیث الان در مسادر ما موجود نیست. این در قرن شما و هفتم اضافه شده. در مسادر ما نیست. آل اضاورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوه ما علا کتاب الله این محل شاید اینه فما باطن به کتاب الله فخضوه و ما خالف کتاب الله فردو از که تا صدوقش یعنی به حسب ظاهر به حسب رجالی مشکل نداره اون مشایخ همان این, این مشایخ عجل در از این حرفا این رو میشه قبول کرد سند خود صدوق هم مشکل نداره زواهرش هم کتاب ابن عبی عمره. اون مسلش هم مشکل نداره صدوق به در تلفون فريدو و الله وما رافق كتاب اخبار الامن فما وما به كتاب الله ما في كتاب الله اخبار العامه وما كان حال این حدیث الان در اینجا با به سندی مشکل نداره به لحاظ مستقی مشکل اما اون حدیث دیگه که الان اشون خوندن که هسته تا موقنه شیخ صدوقه که بریدن این باشه چون شیخ صدوق فوق الازده دیگه اون حدیثی که از اونجا هست اون حدیث مجبو... مربوط هست به مسئله این که پیغمبر اکرم این مستقی فرموندن اصلا سر اینه که آیا پیغمبر چه چیزی رو فرمودن یادم اینو عرض کردم ان شاء الله بعد عرض می کنیم که در اون قسمت دوم اون قسمت دوم اینجا این حدیث اینه انه هشام بن حکم این شماره 15 و غیره ان حبی عبدالله قال خطب النبي صلی الله علیه و آله وسلم و قال ایوهناس ماجا اکم انی یواخ رو کتاب الله فانه قلتوه و ماجا اکم یوخاله و کتاب الله فلمح قلتوه این رو از تویه محنی سندشم الان برسراده صحیح اینشانا اونجا اون تحرز میشین این در تعارض نیست حالا این محنی که صدور نه کرد در تعارضه این حدیث ما نخوندیم رد کردیم این حدیث ما ملتفید بزیواز شرک کردیم اما اون حدیث در تا نیست الان داریم روایتی که در تا آرزه پس عمده روایتی که سریع و روشن و حسب زاهر سندش معتبره در باب تا آرز دقت که بگید نه در اصل حجیه در باب تا آرز همین است که در کتاب به قطب آوندی آمده اگر این کتاب در سال اصابت کشه بقیه تو که آمده می ما الله على محمد و